من از تمبلی و بدیهای پیری بتو پنامی بار الہا من از عذاب دوزخو عذاب قبر بتو پنامی لحظات خبری سوئی خلافت. گزارش های همه از فعالیت ها و پیشروی های دولت اسلامی در تمام جهان لحظات خبری شورای خلافت شما را از حقایق و معلومات تازه و دقیق با خبر می سازد و از تبلیغات دروغین رسانه های غربی پرده برمی دارد لحظات خبری شورای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ شنوندگان مؤمن و مسلمان رادیو صدای خلافت به بخش خبری ما خوش آمدید امید است که روزهای ماه مبارک رمضان را به خوبی سپری نمایید امروز یک شنبه هفتمی ماه مبارک رمضان سال 1437 هجری قمری توجه شما را جلب میدارم به آخرین تحولات و پیشروی های دولت اسلامی و این هم سرخط چند خبر صلید صلید. صلید. بیش از چهارده کشته از ساکر نسیری در جاده رقه و اسریا و و کنترول مجاهدین دولت اسلامی بر دو منطقه جدید در ممبیچ حمله مجاهدین خلافت بر موازي کردها در سینجار و, و, و حلاکت شش فرمانده معارض سوری در شام سوار نشید رووب و القتال ایتالی غریقل هم یبی دولوغه و این هم مشروعی خبرها گزارش ها از تشتیدی در گیری ها در جاده رققا و شهررک از, از ریاه دارد. تازه ها می که در درگیری های جاری بینی مجاهدین خلافت و نیروهای دشمن در نزدیکی مقر ابو در جاده رقع و اثریات چاردتن از اساکیر نسیری به حلاکت رسیدند. خبرها ها که نیروهای دولت اسلامی دو را در جنوب غربی شهر منبیج از نیروهای دشمن باسپس گرفتند. خبر می که در این درگیری ها هشت اسکری کرده کشته شدند. یک حمله کننده استشادی دولت اسلامی کاروان نیروهای کردی را در منطقه اموزدیبان در غرب شهر سینجار آماجی حمله قرار داد. در این عملیات 22 تن از نیروهای کردی کشته و زخمی شدند. در همین حال یک خبری دیگر می گوید که نیروهای دولت اسلامی بر موازی همین نیروها در جبل سینجار حمله کردند. خبر می گوید که در این حمله هفت اسکری کردی کشته شده است. درگیری های پراغنده در اطراف فلوجه هنوز هم جریان دارد. تازه تر اینها که در اصر یک درگیری که میان مجاهدین دولت اسلامی و نیروهای عراقی در نزدیک منطقه المعاریز در جنوب شهر فلوجه رخداد دو تانک امبی و یک بلدوزر از بین رفته و شماری از اساکر کشته شده آجانس خبرگزاری اماق میگوید که یک حمله کننده استشادی دولت اسلامی با استفاده از کمربند انفجاری بالای تجمع نیروهای معاریز سوری در صحرای حمات نزدیک مرز اردن حمله کرده است. گفته شده است که در اثر این عملیات ششتن از فرماندهان نیروهای معاریز سوری کشته اند. این بود آخرین تحولات و پیشربیهای دولت اسلامی از توجهی آن جهان سپاس. صلیل صلیل الصواری نشید الباب و درب القتال طریق الحیا عبی نختیحان یبید الطغاء و سیم صدای و سیم صدای منهج تا منهج برنامه فکری سیاسی نظامی و پس منظر نظام و نظامداری در مفاهیم شرعی این برنامه را یک ها از رادیو صدای خلافت فراموش نکنید شنونده های مؤمن رادیو صدای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران گرامی در برنامه منهج تا منهج شما را خوش آمدید میگم میزبانی ما با مسلم خراسانی را به این برنامه باز هم استاد احرار مهمان برنامه هستند قسم که در گذشت شنیدیم بالای مباحث مختلف پیرامون نظام های کفری هم تماس گرفتیم. حال از استاد در این برنامه سؤال میکنیم که از نظر کلی چند دیدگاه نسبت به خلقت انسان در جهان وجود دارد. ولی پیش از این که وارد بحث شویم، استاد میخواییم که بپرسیم که این متفکرین غربی، بخصوص صاحبان مکاتب و مسلکهای سرمایهداری و غیره چی نظر را در پیوند به اسلام اختیار میکردند الحمد لله وحده و والسلام علی من لا نبی بعده فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلولعقدة من لسانی یفقه قولی وقال تعالى سنريهم آیاتنا فی الآفاق سوره آیت 53 اما بعد قسمی که در مباحث گذشته پیرامون موضوعات مختلف تماس گرفتیم به ویژه دو جهانبینی جهانبینی جاهلیت و جهانبینی اسلامی و زیر جهانبینی جاهلیت به عصای مرکزی و مهوری را بالای جهانبینی مادی و نظام و اقتصاد و همسال هم های خود داشتیم ولی در یکی از مباحث گفتیم که در خطوط اساسی اسلام به قول یک عالم که اسلام مجموعه از افکار پراگنده و راههای منتشر و متفرق نیست که از اینجا و آنجا جماوری شده باشه بلکه اساس و بنیاد و زیربنا و همودیسپلین و همو مکانیزم اسلام بسیار به دقت پیگیری شده پیچه از این که وارد بحث خلقت از دو دیدگاه شو می همان سوال شما را پاسخ بگویم که از نظر تاریخی اگر ما یک نظر به تاریخ گذشته بیافگنیم یکی از تاریخ را که تاریخ مجموعه ملل جهان نوشته کرده همو اسم معرخ از ذهنم بیرون شده یک تاریخ مشخص بالای جنگ صلیبی نوشته است طبیعی است که جنگ سلیبی هم از خود عواملی داشته و بعدا دیدیم که صلیب و ایساویت به عنوان یک مکتب تنها در کلیسا و در مقابد منحصر شد. و وجه انحصارش هم همین بود که از قرن یازده یازده میلادی وقتی که در مقابل کاتار همین جنگ سلیبی شروع شد تا قرن عبدوم. وقتی مم. که ناپلیون به یک،, یک قدرتمند نظامی قد علم کرد و یک تحول بزرگ در تاریخ اروپا به وجود آورد مکتب صلیبه یعنی متفکر صلیب به اینوان یک قضیه در پاپ و کلیسا منحصر شد و ما دیدیم که در ردوار تاریخ هم هر کسی که خلاف اونمو پرانسیب و آدرس و گفت و های کلیسا و پاپ کلیسا سخن می گفت و به عنوان یک مجرم یا بدار آویخته می یا ازش طلب توبه میشد که مثالای های زندهش در زندگی نامه گالیله است که او بعض نظریات علمی در پیوان به ساینس و در پیوان به نظام حسدی مطرح ساخت چند بار از او استدعای توبه شد و وقتی که کوپرنگ به عنوان یک کسی که در علم ستاره شناسی یک کتاب مشخصه در پیوان به گوشایی و در پیوان به جستجوی راه در ابهار نوشت و به بسیار مشکل چاپ شد ولی در نفس چاپش هم این پیام کلیسا نوشته شده بود که این کتاب به عنوان یک قضیه غیر علمی است ولی بعدا در قرن هفت میلادی بعد از کوپرننگ وقتی که یک کسی با اسم برونو باز جرأت کرد و اقدام کرد تا ده ای کتاب موجگافی کنه و ای کتاب توصیح به حتی او شد یعنی در کل امی مذب پروتستانت که با وجود آمد توسط لوتر در بگمان اغلب در قرن چاردوم میلادی بود یک مذب اصلاحی که هدف و مقصد شی بود که برای انسان ارزش قایل شود و هر نظری علمی که در جهان غرب مطرح می شد یعنی به قهقرا گرفته میشد و مردم تفتش عقاید از او بازرسی میکرد و او انسان به شیوه های مختلفش تحذیب میکرد که او تصاویر تحذیبش هم در تاریخ ذکر شده همین برداشت را که امی متفکرین غربی از نفس ایساویت و از نفس یهودیت به طور مثال یکی از چیزهای واضح در نفس ایساویت این است که هوا و آدم علیه سلام از الله عزیز و جل خود یعنی ذات مقتدر که کل جهان به وجود آورده و از جزیات و کلیات و از چیزهایی که مخفی است آگاه است حتی در طفل و جنین که در بطن مادر است یعنی توی یک نسبتره میته که یک نسبت نقصو کمی بالوس مناولت یا به طور مثال مباحث گرمه که دکتر زاکر نایک در رسانه های جمعی و بسط جهان مطرح میکنه اگر شما اور رو پیگیری کنید در میابین که نفسی سویت هیچ چیز به گفتن ندارد یعنی قضیه انسس یعنی این زنا با محارم در آن ذکر شده و یا یک مگر یک مثال دیگه که در می کتابا وقتی که میگه یک ایساوی با زده میشه باید دیگه روی خود بیره اگر این قمقدار را ترکت میکن تو باید نینه قمقدار رای دیگه حرکت مینی یعنی کلن یک مقدار شاید الفاظ باشه که از جانب الله باشه خود در کل هر کسی که آمده در, در نفس عیسویت یعنی چیزی رو گنجانیده که جز مزخرفات و جز گپ های منافی با اخلاق توحید و منافی با ادیان، بوده است و همو برداشتر که این متفکرین غربی و این و بنبست و ای را که بالای همو متفکرین غربی ایجاد کرد یک نو مردم متنفر ساخته از دین و دینداری همو بود که بعدا کارل مارکس دین افیون ملت ها میگه مواد مخدر است که ملت ها را مسموم میسازه یا داروین بدبخت میگفت که پدیده نفس امیدین و دینداری یک دام بزرگ است خاطر انداختن بشر و خاطر بحرکشی و یهودیت چیز چیزو شما اگر به آثار مربوط به کتاب یهود مراجعه کنی در بیا بید که اگر یک نفر در خواب با مادر خود یا با خواهر خود زنا میکنه ای را نشانه حکمت و اقلانیت گرفته یا مثلا میگه که اگر به یهود کسی کس بسیلی میزنی به این مانا که بروی بلا تشبیه علی عیاض بر بروی الله سبحانه وتعالی این در باعث آینده انشال هم سر یهود اونمو برداشت را که اینا از یهودیت و نصرانیت داشتن او را آوردن بالای اسلام حمل کردن یکی از مسائلی که در, در نفس انجیل ذکر شده که بعض منجمین یا بعض مجوسی ها پیش از تولد ایسای مسیح در شرق زمین ستاره ای او را رو رویت کردند و نهایت همه در پی آن ستاره به اورشلیم رفتند و و اونجا به خاطر جستجو ایسای مسیح وقتی که ستاره را دریافتند و در بیت اللهم در زادگاه عیسی علیه السلام وقتی که عیسی علیه السلام به به او سایه در یعنی از یا مثلا در بعض موارد آمده که نسبت شرک و کفره به انبیا اینو و از موارد بسیار خطرناک که انبیا به عقیده ما مسلمانان همان قسمی که در عقیده تهاوی ذکر میشه که انبیا معصوم هستند هم از گناههای کبیره و هم از گناههای صغیره مشروط به مو اختلافی که بین ولما هستند ولی اینا نسبت گناه رو به انبیا میکنه حتی میگن که اکثر انبیا مرتکب زنا با خواهر مادر و محارمشان شده اعلیحضرت ما اونم دیدگاه اونم فکر فکر نسبت به ادیان تحریف شده و دستخورده پیشین از اسلام داشته نور آوردن بالای اسلام حمل کردن و این چهار رکن الهاد یکی برترین راسل دوم شارتر و فروید و کارل مارکس اینا کسانی هستند که مکاتب فروید، مکتب روانکاوی در با وجود و, و کارل مارکس مکتب کمونیسم وجود آورد و برتر اندرسل و شارتر هم گپای خود نسبت به انسان و نظام نظابداری داشتند وقتی که برتر اندرسل در پالوی از از بهترین پاهنتون یکی از پاهنتون بسیار مشهور جهان فارغ و یکی از بچه یکی از پسران اشرافزاده بود به حد معلومات ستی نسبت به اسلام داشت که معلومات از این وقتی که نسبت به اسلام یعنی در کل یا نبوخ داشتن یعنی نابغه بودن و امان ستینگریشان نسبت به اسلام و برداشت کلیشان که نسبت به یهودیت و نصرانیت بود را آوردن بالای مثلا برترین راسل در یکی از آثار خود در کتاب جهانبینی علمی میگوید که تغییری را که محمد صلی الله علیه و سلم در عادات ها ایجاد کرد شبیه همان قانون تحریم شراب بود که در آمریکا بیشتر از 14 سال نگرفت در حال که ما وقتی که مقایسه میکنیم یعنی میگه هر چیز باید از زدش بشنوز اگر واقعای اسلام یک نفر میخواید صحیح درک کنه و صحیح بدانه یک دفعه سر باید بزنه به با دور جاهلیت نظر به فرهنگ موین و نظر به فرهنگ علی اکبر دی خدا یعنی جاهلیت اما عصر پیش از اسلام میگه که مردم در نهایت بربدیت و در نهایت انحطات یک معاشره که نه تحت تاثیر نظام فارس بود و نه تحت تاثیر امپراتور روم بود بلکه از خود نونمو گپه های خدا داشتن شیر سرودن و شراب نوشیدن و دشمنی های دامددار و یک زن ده نفر نکاح کردن و برهنه تواف کردن و و شرک به شیوه های مختلف در اونجا حاکم بود ای امو ساختار اصلاحی تفکر اسلام یعنی تشبیه میکنه به قانون تعوز تحریم شراب که بیشتر از چهارده سال در اروپا نگرفت ولی در حالی که ما دیدیم که بیشتر از چهارده صد سال اضافه تر اسلام به عنوان یک متحرک در بین جوامع اسلامی کار میکنه و امروز ما در یک مثال زنده نفس می خلافت در خراسان اگر بر شما مثال من به عنوان یک کسی که در یک اداره در یک اداره جنایی به عنوان مسئول ماندیم در نفس خراسان با وصف که فقر و تنگدستی حاکم است ما در در در شش ما یک یک قضیه دوستی داشتیم هو هم در بین دو هزار نفر دستش بوریده شد و امروز از ناهیه امن و امان ولی برخلافی در نظام کابل که بیشترین متفکرین و تو روسنها و بیادر ماسترها و امساله هم بیشترین هزینه بخاطر ساختار و اصلاحات و نظام زده میشه ولی تو جیب تا در نفس کابل در یک موتر نگاه کرده نمیتونی مم. یعنی این ثابت میسازه که تغییر رکه تغییر رکه در نفس وجود و زمیر مسلمان ها، رسول الله سلام علیه و بعد و تأسیس اسلام آورد امروز هم حرکت میافرینه امروز انسانها انسان ها را با وجدان و با ویت و با برنامه و رسالتمند به جامعه انسانی چه میکنه تقدیم میکنه و یکی ازی وقتا فروید بود که خودش هم یهودی بودی در یکی از مباحث خود میگه که اسلام تکرار مذهب یهودیت است یعنی اسلام تکرار مذهب یهودیت است همان قسم که انشتاین به این باور بود به عنوان یک ساینزدان معروف که نفس قرآن و سنت یعنی گپ‌هایی که متعلق به قرآن سنت است سیر محمد صلی الله علیه و از یهودیت اخذ کرده همان نظر فرویت هم نسبت به اسلام ارائه میکنه یک مشکل اساسی به قول یک عالم این است که در جوامع اسلامی همیشه جوانان و بویشه کسانی که خود صاحب بصیرت و روشن فکر میگیرند اونا همیشه انتظار ایره میکشه که باش فلان عالم یا فلان غربی یا فلان متفکر یا فلان فیلسوف چی دیدگاه و چی نظریه نسبت به اسلام داره یک وقت ما در کابل بودیم و در یکی از مجالس یک پرخاش ما با یک کمونست شد و بعد از اون ما تصمیم گرفتیم که برای هر سوال باید جواب جستجو کنیم ولی ای پندار ما غلط بود ما مکلف نیستیم که هر کس در باب, در باب دین و دینداری و موتون و قرآن و سنت چی کنیم؟ قناعت بدیم و ما های طرف فکر می کردیم که ساینس و تکنولوژی و نظریات غربی ها را با جمعی نظریات دانشمندان معروف نسبت به اسلام نقل کردن ای به خاطر ازاله شبهه مهم است ولی به اهداف در اصول نظامی یک اصل است میگه چیزی که میگه تعرض میکنه و دفاع رد نداره <تصفيق> یعنی قرآن کریم وقتی که نسبت به نابهسامانی ها تماس میگیره تماس تعرضی داره اگر شک می باشه، اگر کفر می باشه، اگر گبه های منافی با اخلاق شرعی می باشه اسلام یک, یک شکل تعرضی رو اختیار میکنه نه یک شکل دفاعی و این متون ثابت ما ضرورت ننیم که متن رکه الله و رسول به عنوان یک چیز ثابت بر ما آورده سبوت شما از دیگر بخوایم که باشد برترین راسل یا ژانپال سارتر یا امثال هم یا این متفکرین بدبخت غربی و ملحد چی از گفت را نسبت به اسلام داره کاملا نی ما کاملا نظر ما یک نظر غیر شریعی غیر اسلامی است اما قسمه که سید قطب رحمه الله در یکی از آثارش می وقتی که سفر داشت به طرف امریکا میگه یک تعداد مردمه که منسوب به اسلام بودند اونها هم در درامی رامی تحصیلی کتیما بود اونا که در مجالس می نشستن طور یک شیوه و روش را اختیار میکردند در پیوند به اسلام که کلا بود. یعنی ما فکر میکنیم که اسلام به یک مجرم جرم کرده و در عقب میله های زندان است و اینی کسا چی هستن؟ وکلای مدافع که از اسلام دفاع میکنه در حال که اسلام به دفاع ضرورت نداره اسلام پیام داره، اسلام با گفتن سخن داره و همین قسم وقتی که سر زندگی مارکس هم وقتی که در رابطه به مارکس نظر و نسبت به اسلام میخونیم او هم اسلام به کشمکش تعبیر میکنه بین, کی؟ بین چند عرب بادیانیشین و چند عرب که در شهر زندگی میگن میگفت که یک ای این ترانزیتی بود که یک تودی از مردم از مردم که سروتمن بود و قدرتمن بودن و خان بودن از مردم بادیانیشین به حرکشی میکرد و محمد صلی علیه و علیہ به عنوان یک کس آمد در بین ازیا واقع شد و ما به قول یکی از ولما میگه این چار متفکر یا چار رکن الهاد و ترویج کفر و ترویج نظریات ضد دینی اگر یک بارم قرآن کریم به انصاف اینا میخواستن همان نظریات ریرای را میگه که دکتر جوستا و به عنوان یک مستشرق و به عنوان یک یک و به عنوان یک دشمن دین وقتی که اسلام مخاطب است از, از از این که علی اسلام تبلیغات کنه و ماشین تبلیغاتی برابرته و گپها و گفتو شنودهای یعنی جریحه نسبت به اسلام روا به دارد بخش عظم از آثار خود در تایید به اسلام چه میکنه می نویسه و در یکی از آثار مارکس آمده که ای را این یک انحطاط تجارتی ترانزیتی مکه نامزده و در بخش از آثارش آمده که دین فیون ملت است در یک جای میگه که دین فیون ملت هاست در جای دیگه افیون به این معنا که مواد مخدر است که مسموم بسازه مردم به خاطر ازی که از مردم بهره کشی کنی این در کل نظریات پوچ و مزخرف و منافی با اخلاق توحید و دور از عدل است که اینا غیر مسئولانه در کتب خود و در های خود و در آثار و در مقالات خود ایره به نشر رسانده و یک بخش عظم از جوانان بویژه محصلین با, با هنزه ای علوم اجتماعی سخت است تحت تاثیر همی فلسفه مارکس و همین افراد مزخرف از ولی در کل اگر پیام اینها پیام سازنده می بود اگر طرز عمل یا طرز سازنده می بود اگر بیخ بنیاد می داشت شاید اینها بقا میکرد و میبینیم که بیش از 100 سال امروز هم که بقا کرده بر رضایت بقا نکرده امروز خراسان به عنوان یک تشکل سیاسی به عنوان یک نظام ما ببینیم که نظام ما در همین تندستی با کمال وفاداری این نظام ما به عنوان یک نظام اخلاقی میگم چرا این نظام به عنوان یک نظام پایدار هشت ماه یک سال یا اضافتر از یک سال در نفس رقه و در نفس عراق و در نفس خود افغانستان و خراسان و سرزمین خراسانی خود حفظ کرده؟ چی وجود داره؟ در حال که نظام های ما در مکتب کمونیسم دیدیم که در تاریخ نشته میشه که مکتب کمونیسم به سبب قدرت نظامی، به سبب آتش آهن، به سبب فعالیت ها و بستر که بیاد اداره های استخباراتی جور کرده بود برای تطبیق ازی. یعنی امروز میبینیم نظام سرمایهداری در افغانستان به زور آتش آهن و به زور دلک نفر رو دوی میلی و به زور امنیت میلی و به نظامی ولی اگر نظام به اختیار خودونه هیچ کسی نظام به عنوان یک طرز عمل نمییره ولی ما اینجا دیدیم که نه زور است یک نظام اخلاقی هست قسمه که در آثار یهودی‌ها آمده که اسلام اگر 20 فیصد مسلمانان اسلام بالای خود تطبیق کنند نیاز به پلیس داشته باشند و ما دیدیم اینجا کس مجرم بشه یک مجاهد چندین مجرم ما اینجا دیدیم مشاهده کردیم وقتی که از قضا بالای ازو جرم ثابت شد خودش روانی جیل شد خودش روانی زندانی، یک فضای اخلاقی و اسلاممان امان که در شروع گفتیم مجموعی از افکار پراگنده نیست بلکه پیام داره بگفتن و برنامه داره و الله سبحانه وتعالی تا قیام قیامت مسئولیت و حفظ از این نظام به گرفته است جزاک الله خیر استاد محترم از که بر مورد در مورد صاحبان مکاتب و مسلک های سرمایداری معلومات دادین که اینها در رابطه به اسلام چی نظر دارن مانند فرویت و مارکس و این مردم ها که بر ما معلوم شد که اینها نظرشانی بود که میگفتند که اسلام از ازمو دین یهودیت و نصرانیت گرفته شدن خب چون وقت برنامه ما کم است ما سوالات دیگه هم داشتیم این که در جهان چند دیدگاه یا چند نظر است در رابطه به خلقت انسان خب چون وقت برنامه کم بود از این خاطر نتونستیم که سوالات دیگه رو مطرح کنیم انشاءالله در برنامه های آینده باز هم از استاد سوالات میپرسیم تایی که جوابشه اخص کنیم و بفهمیم که این نظام ها کدام نظام ها هستند و در پیوند به اسلام اینها چه چی نظر دارن؟ تا برنامه آینده که باز هم در خدمت شما قرار می شما را به عز الله عزوجل مسبارم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. طفولت‌نا بی‌اسلامی الكرامة، فعلمنا البسالت و الشامه. قول‌های خراسان. آیا شما می‌خواهید که رادیو ساده خلافت را از بین ببرد؟ برنامه فکری، تعلیمی و باشه بچه با دختارا که میکنه خلاف اسلام است میتونی برما بگی که کدام کدام دعا رو یاد داری؟ داینم خوردن، دعای از خو خاو کردن اینها اطفال شیران خلافتند. اینها آینده درخشان خلافتند. اند پیام برزویی است که به خلافت اسلامی و از گناهان تو بکنند. بله، بله این ها گل های که در کوههای خشک جنگلهای جنگل های بی پایان و آوازهای های حیبتناک صلاح های سقیله به فکر و روحه اسلامی تعلیم و تربیه را به دست می آورند به یک دستشان قلم و به دست دیگرشان شمشیر است. دیجه بمباری میشه یا جنگ میشه یا صدای تفنگ و صدای بمی چیزا را مشنوی نمی ترسی؟ نه الحمدلله. همین نسل جهاد در تمام دنیا قرآن را حاکم میکنند ان دل گفته های اطفال خراسان دو شمب از رادیو صدای خلافت بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي فرض الصيام على عباده وجعله جنة عن النار والمعاصي والصلاة والسلام على إمام المجاهدين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض بس وقتك روزي رمضان يكي شما باشد دروزي روزي يكي شما باشد يعني يكي شما روزة باشد درميان شما كسي باشد كروزة باشد فإذا كان يوم صوم أحدكم بس وقتك باشد دروزي روزي يكي شما فلا يرفظ شخص مؤمن نبا يتكون بدقوينا بيتكون الرفث در أصل لغة عربي الكلام الفاحش سخانة فحشة ما يقول فهوهد حديث هذه حديثة معنوم شد که روزه از جمله اعمالی است که پاداش ازیرا اللہ متعال میدهد دوم هزی حدیث معلوم شد که روزه نگاه انسان از گناهان و از معاسی و از کارهای فحش و غلط است برای شخص روزدار مناسب است و لازم از بالش که نباید سخن بد بگوید و از بلند کردن سخان و صلاحا بسار یعنی به آواز بلند نباید سخن بگوید چهارم برای شخص روزدار مناسب است که وقتی شخص وراده داد باید بگوید که ما روزه دار است و پنجم از حدیث معلوم شد فضیلت شخص روزدار دار و ششم از حدیث معلوم شد که شخص مؤمن در روز قیامت با ملاقات پروردگار خود نائل میشه. ری حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه وسلم درباره فضیلت شخص روزدار و ماه مبارک رمضان می فرماید إذا جاء رمضان هنغامك ماه مبارك رمضان فرارسي فتحت أبواب الجنة در وزهاي هشغاني جنة بازمي شود وغلقت أبواب النار وبستمي شود دوزخ وصفدت الشياطين وهم جنان شيطانها بستمي شود يعني بزنجيرها شيطانهاي سركش بسهمیشان ونداریه که از حدیس هم که مرده تلچین اون شیطانهاي بسهمیشان وند که مصار سرکش استن ازو حدیس معلوم که وقتی شیطانهاي که سرکش نیستن يعني شیطانهاي بسار بزرگ بزرگ بسهمیشان همون مش از آنها اما و شیطانهاي که خرد سن وابسه نمی باشن و صفت الشیاطین و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که شیطانها که سرکش استن و جميعهم بس هميش يوم از جمله فزائل ماه مبارک رمضان است در یازده ماه سال این شیطان ها سرکش باز میباشند اما در ماه مبارک رمضان بسته میشوند از جمله فزائل ماه مبارک رمضان است و در حدیث دیگری سهل بن سعد رضی الله عنه روایت است و میگوید که رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمود ان فی الجنة بابا یقال له ریان یقینا در جنة یک دروازه است له الریان کبرای اندر گفته می شود الریان نام این دروازه ریان است برای جنت 8 دروازه است از جمله از آن دروازه ريان در اصل لغت آب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرما يدقين در جنة دروازية كيف تقول ريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة هذه دروازه هذه دروازية باب الريان تنهار زدران داخل ميشان لذلك لا يوجد حق دخول را نرارد كيزين دروازات داخل شاب داخل جنة شاب بابي از در جنة بنامي باب الصدقة باب الجهاد باب الصلاة باب الزكاة اما باب الريان یک دروازه ها به نام باب الريان است دروازه تنهار ز دارن داخل می شود کسی دیگر دخول را دروازه ندارد رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که منه الصائمون يوم القيامة داخل می شود دروازه تنها اشخاصی که روزه لا يدخل منه أحد غيرهم داخل لم يشوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ميفرمات منه أزان دروازة أحد كسي غيره وغير زيشان ايج كسي بغير زيشان دروازه داخل شده نعمت بعد ذو رسول الله صلى الله عليه وسلم ميفرمات يقال قفت ميشوت روز القيامات أين الصائمون كجاهستن روز داران كجاين روز داران كجاين. فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم رزاداران بلان ميشوان وداخل لم منه أحد غيرهم أزان دروازام رأي رزاداران كسيري تنها رزاداران داخل ميشوان فإذا دخلوا أغلقا فلم يدخل منه أحد هنقامك داخل شوان رزاداران داخل جنة تذباب الرأيان أغلقا باب الريان دستمیش فلمیت خله منه احد از باب الريان کس دیگر داخل نمیشود این جمله فزائل ماه مبارك رمضان یا حدیثی را فعلا بیان کردیم در این حدیث فضیلت مبارك رمضان بیان شد و تمام مسلمان ها اشخاصی که روزه دار هستند توصیه و نصیحت میگوینیم که ماه مبارک رمضان مطابق قرآن وصنة رسول الله صلى الله عليه وسلم روزا بكراً واسخانها واسكارها غلط واسكارها فحش اجتنابقناً وحترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مي فرمات وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الضمع بسارع رزالاران هستن كنس براي روزيه زمغر تشنغي يعني تنها تمام روزر تشنغي باشن اما ورشن کدام اجر ده ده و ثوابی داده نمیشود تصرف الله متعال تنواتش نمیشند به خاطر اینکه نیت یی از مردم سینه سو به خاطر الله متعال روزه را نگرفته است و اینکه در تمام روز از دروغ و غیبت و سخنهای فحش اجتناب نمیکرد از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و وسلم می فرماید و کم من صائم ليس له من صيامه الا الظما بسیار روزه‌داران هستند كنيسة براي روزياسو مقر تشنجي وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فرمات وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر وبسارية قيمكن النجانيها السندر شبه هاي ما هي مبارك رمضان يعني نمازتها الجد مغانا يا ترى ويحمي ليس له من قيامه إلا السهر كنيسة براي أم قيام يا زى يعني أم شبه ایل السهر مگر بیخوابی تمام شب را برش و برش اللهم وبحمدك أن لا اله شارعتنا شارعتنا شنونده های رادیو صدای خلافت این بود داشته های برنامه امروزی ما پس از نماز مغرب نشرات رادیو صدای خلافت روی همین موج به زبان پشتو ادامه می یابد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته